درود شنوندگان رادیو البرز، عرض ادب خدمت همه شما نگاهی می اندازیم به آخرین اخبار دانمارک در هفته ای که گذشت مجله مشهور متروپولیس نیویورک که همه سال بهترین شهرهای جهان برای زندگی را انتخاب میکند برای سال 2016 شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک را بهترین شهر جهان برای زندگی معرفی کرده است این نشریه دلیل انتخاب شهر کپنهاگ برای زندگی را امنیت، آرامش و هوای پاک و سالم آن ممای کرده است این نشریه نوشته برای بیش از 45 درصد از مردم ساکن شهر کوپناک دوچق سواری یک امر عادی و روزمره است و دوچق سواری بخشی از زندگی آنهاست یکی از دلایل انتخاب دانمارک تحسیس پلهای طولانی و زیبا برای تردد سریع و امتر دوچق سواران در این شهر اعلام شده شهردار کوپنهاگ اخیراً یک پل 180 متری را برای تردد بهتر و سریعتر دوچق سواران افتتاح کرده است شهرهای برتر جهان از نظر این مجله برای زندگی عبارتن از کوپنهاگ، برلین، هلسینکی، سنگاپور، وین توکیو، اسلو، ملبون، تورنتو و پرلند اعلام شده آتش سوزی خودروها در شهرهای اطراف کوپنهاگ ادامه دارد. پلیس ناتوان از یافتن مزنومین اصلی. این هفته هم دست کم 8 دستگاه خودرو توسط افراد ناشناس در نواحی غربی کوپنهاگ با آتش کشیده شده است. این حادثه در حالی رخ میدهد که برخی منابع خبری تعداد خودروهای دچار آتش سوزی در شهر کوپنهاگ را 16 دستگاه عنوان کردند. به گفته مقامات پلیس یک فرد یا افراد ناشناس با ورود به یک محوطه آزمایش خودرو در این شهر اقدام به آتش زدن خودروهای پاک شده در این محوطه کردند. دو هفته پیش پیش از این بود که پلیس کوپنهاگ از دستگیری فردی مزون به دست داشتن در آتش سوزی شبانه خودروها در این شهر خبر داده بود. پلیس گوید هنوز نتوانست ارتباطی بین آتش های شب گذشته خودرو و آتش ماه گذشته کوپنهاگ پیدا کند. مرکز بین المللی اكسباد می‌گوید ها بدترین مردم جهان در دوستی با خارجیا هستند. نتایج یک تحقیق جهانی نشان می‌دهد که ها بدترین مردم جهان در دوستی و رفاقت با افراد غیربومی و ماجرا هستند. این مرکز که توسط ا... این تحقیق که توسط مرکز بین المللی انجام شده نشان می‌دهد که کشور دانمارک به رغم، قرار گرفتن در رتبه دوم بهترین کشور جهان برای زندگی به دلیل نامهربانی مردمش با مهاجران و خارجی ها در جایگاه پنجم فهرست بهترین سرزمین های جهان برای زیستن قرار گرفته. 65 درصد از مهاجران ساکن دانمارک در این تحقیق شرکت کردند ها را بدترین مردم جهان در دوستی با مهاجران و خارجی ها معرفی کردند. در کنفرانس خبری که به بهانه انتشار نتایج تحقیق این مؤسس انجام شد، سخنگوی این بنیاد اعلام کرد کشورهای شمال اروپا بدترین سرزمین های جهان برای مراوده و دوستی با خارجی ها هستند و دانمارک در این میان جایگاه بدتر از همه را دارد و رتبه این کشور در بین 67 کشور م... کشور مورد تحقیق 65 است. در این تحقیق همچنین آمده است وضعیت مردم کشورهای اسکاندیناوی در دوستی با مهاجران بهتر از دانمارک نیست چون که سوئد پس از دانمارک با رتبه 62، نروژ در رتبه 63، فنلاند در رتبه 59 قرار دارد. رتبه دانمارک در برابر این گزینه که آیا ها به راحتی با خارجی‌ها دوست میشوند 64 است. با این همه یک نویسنده آمریکایی ساکن کوپنهاگ معتقد است دلیل نارفاغتی ها قلب های سنگی آنها که فرهنگ سرد و خاص مردم این کشور در برقراری ارتباط با غیر دانمارکی هاست او میگوید دانمارکی ها به روابط عمیق و طولانی مدت بیشتر اعتقاد دارند تا دوستی های کوتاه مدت پیشنهادهای دولت دان... های دولت دانمارک برای توسعه اتومبیل‌های برقی تخفیف هزار کرونی از طرف دولت احزاب دانمارک روز یکشنبه پیشنهاد برای سرعت بخشیدن به استفاده از وسایل نقلی الکتریکی در دانمارک را ارائه دادند در این سیستم اتومبیل‌هایی که سازگار با محیط زیست هستند با تخفیف مناسب عرضه می‌شوند سخنگوی حزب دموکرات اعلام کرد برای هزار خودرو برقی تخفیف چهل هزار کرونی پیشداد شود. دولت دانمارک با ارائه تخفیف چهل هزار کرونی به خریداران خودروهای برقی تلاش می کند علاوه بر کاهش تولید گازهای گلخانهای و آلودگی هوا فرهنگ استفاده از این نو خودروها را در جامعه نهادی کند تعدادی از دانشجوان پارسی زبان دانشگاه کوبنهاگ یک دوره آموزشی زبان پارسی و دانمارکی را رایگان برگزار خواهند کرد. در این دوره آموزشی که هر چهارشنبه بین ساعت 16 تا 18 در دانشگاه کوبنهاگ برگزار می شود، مفاهیم مقدماتی زبان پارسی و دانمارکی تدریس شده و اطلاعات مفیدی در زبان دانمارکی به زبان داده می خواهد کلاس ها هر چهارشنبه بین ساعت 16 تا 18 در دانشگاه کوپنهایگ برگزار می شود شما می توانید برای نام نویسی در این کلاس ها با ایمیلی که اعلام می کنم تماس بگیرید سمیرا عبادی 74 at hotmail.com تکرار می کنم سمیرا عبادی 74 at hotmail.com استفاده از گلکسی نود هفت در حدود هوایی دانمارک ممنوع شد. شرکت هوایی اسکاندیناوی روز شنبه اعلام کرد به دلیل به اعلام کرد به دیگر شرکت های هواپیمایی پیوسته که استفاده از تلفن های سامسونگ گلکسی نود هفت را در حین پرواز ممنوع کردند. این ممنوعیت پس از آن امار شد که گزارشهایی درباره انفجار باتری برخی از دستگاه مدل تلفن گزارش شده. این شرکت در بیاانی اعلام کرد روشن و شارژ کردن تلفن‌های های همراه سامسونگ گکسی 9 در همه پروازهای های شرکت هواپیمایی اسکان دیناوی ممنوع می باشد. گرمای این هفته دانمارک رکورد۱10 ساله گذشته را میشکند سازمان هواشناسی به افسایش بی سابقه دمای روز سهشنبه دانمارک تا 28 درجه بالای صفر اشاره کرد و گفت این افزایش دما در چنین تاریخی در 110 سال اخیر بی سابقه بوده و یک رکورد محسوب شود سخنگوی این سازمان گفت افزایش دمای که در روز سهشنبه در دانمارک ثبت شده در طول 11 دهه اخیر دانمارک در چنین روزی بی سابقه است. و خبری نه چندان خوشایند برای افرادی که از کمون حقوق دریافت کند جدول جدید کمک از های اجتماعی اعلام شد. دولت دانمارک نیز در صدد تشرید قوانین می میباشد. دولت قصد دارد قوانین کمک از های اجتماعی خود را چنان تغییر دهد که بتواند متقاضیان پناهندگی را از همان پشت مرز به کشورهای خود بازگرداند از اول ماه اکتبر سال 2016 بار دیگر پرداخت کمک, کمک های دستخوش تغییرات گستردهای خواهد شد رسانه ها با درج یک جدول از شرایط کمکهای بلاوضع به افرادی که دریافت میکنند خبر داد در این طرح مادر تنها با یک فرزند 2500 کرون مادر تنها با دو فرزند 2900 کرون مادر تنها سه فرزند سه هزار کرون زن و شوهر با یک فرزند هفتصد کرون زن و شوهر با دو فرزند هزار دویست کرون زن و شوهر با سه فرزند دو کرون از اول ماه اکتبر کاهش می‌آید. و یک خبر خوب کسب مدال نقره ماراتون اروپا توسط ورزشکار پناجویی ایرانی در دانمارک. در کنار پدیده مهاجرت نخبگان ایرانی در سالهای اخیر روند مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران نیز شدت گرفته است آزادی امکانات درآمد بیشتر و دلایل دیگر باعث مهاجرت ورزشاران ایرانی در سالهای اخیر شده است امیرحسین نوریان ملیپوش ایقرانی در رشته آبهای خروشان سال گذشته در کشور دانمارک تغاضا پناهندگی کرد وی پس از پرندگی با تلاش و پشکار به هدف خود رسید عضو باشگاه قایقرانی شهر آلبوک و دارنده مدال نقره مسابقات ماراتون 21 کیلومتر اروپا در بین 500 شرکت کننده و در صدر ده نفر برتر اروپا قرار گرفته است ما به نوبه خود به ایشان تبریک می گویم. و پیرمرد مرد هفتاد و هشت ساله دانماکی که جان همسرش را به درخواست خود گرفته بود در دادگاهی محکوم شد مردی را به جرم کشتن همسرش به درخواست خود او مجرم شناخته شده, شده و اعلام کردند که اوتانازی در دانمای قانونی نیست و مجازات آن تا سه سال زندان است در حکم دادگاهی آمده که وخامت شرایط و جراحات همسر این مرد باعث تخفیف مجازات او به حبس تعلیقی شده و او اعتراف کرده که برای اینکه همسرش را از رنج کشیدن نجات دهد به او کمک کرده که خودکشی کند این مرد در اعترافات خود گفته که پس از مدتها که همسرش از که 50 سال از عاشق اوست بارها از وی درخواست کرده جانش را بگیرد و به رنجش پایان دهد بالاخره در ماه آبریل با خوردن با 100 قرص خواب به این درخواست او پاسخ داده و اکنون نیز از کرده خود پشیمان نیست اسناد دادگاه نشان میدهد که این زن چندین ماه پیش سقوط شدیدی داشته که منجر به آسیب شدید مهرهای گردن و فلج دستان وی شده است پزشک وی بیشتر به آنها گفته بود که بهبود شرایط او ناممکن است سپاس فرابان از توجهتون شاد و سر باشید